نوار با همکاری نش افق تقدیم می کند و دریا نوشته ارنست همینگوی او پیرمردی بود که تنها با قایقی در گلف ستریم ماهی میگرفت و هشتاد و چهار روز میگذشت که هیچ ماهی نگرفته بود. چهل روز اول پسرکی همراهش بود. اما پس از چهل روز ماهی نگرفتن پدر و مادر پسرک گفته بودند که پیرمرد دیگر قطعا ساله اوست که بدترین شکل بد بدبیاریست. و پسرک به دستور آنها به سراغ قایقی دیگر رفته بود که همون هفته ی اول سه ماهی درشت گرفته بود. پسرک از دیدن پیرمرد که هر روز با قایقی خالی برمیگشت غمگین میشد و همیشه میرفت تا در بردن گلوله های تناب یا چنگک و قلاب و بادبان که دور دکل پیچیده بود کمکش کند. بادبان با گونی آرد وصل شده بود و آنطور که بسته بود به پرچم شکستی ابدی می پیرمرد لاغر و نحیف بود و پشت گردنش چروکهای های داشت. بر گونه هایش لکه های قهوهی سرطان خشخیم پوست بود که از تابش آفتاب بر دریای هاره به وجود میآید. لکه ها از دو گونهش به پایین راه گرفته بودند و بر دستانش داغ زخم های عمیق بود که از کشیدن تناب ماهی های سنگین به وجود آمده بود اما زخم ها همه کهنه بودند به کهنگی شیارهای برهوت میماهی پیرمرد همه چیزش پیر بود مگر چشمان به رنگ دریایش که شاد و شکست ناپذیر بود همچنان که از کنار ساحل که قایق لنگر انداخته بود راه بالا را گرفته بودند پسرک گفت سانتیاگو شاید بتونم دوباره باط یک یه کمی پول جمع کردم پیرمرد به پسرک ماهی گرفتن آموخته بود و پسرک به او مهر می‌ورزید پیرمرد گفت نه تو <تصفي> توی قایق خوششانسی، اونجا همونجا بمون ولی یادت نیست که یه بار هفت روز مايه نگرفتیم و بعد سه هفته تمام هر روز چه ماهایی درشتی گرفتیم؟ یادم است؟ میدونم که رفتنت از روی بیاعتقادی نبود. پدرم مجبورم کرد که از پیشت خب من هنوز یه پسر بچه‌ام، باید به حرفش گوش کنم. میدونم. طبیعیه. اون خیلی اعتقاد نداره. نه. <تصفيق> ولی ما داریم. می‌بینی نه؟ چرا بیا اول به یه آبجو توی کافه تراس مهمونت کنم بعد خیر و پرتسه ببریم خونه باشه <تصفيق> ماهیگیرا با هم از این حرفا ندارن آن دو در کافه نشستند و بیشتر ماهیگیران پیرمرد را دست میانداختند. و پیرمرد از کوره در نمیرفت بقیه که پیرتر بودند نگاهش میکردند و غمگین می شدند. اما غمشان را به روی خود نمی آوردند و معدبانه با او از جریان اقیانوس و اعماقی که نخ غلابشان رفته بود و هوای خوب ماندگار و هر آنچه دیده بودند میگفتند اکنون ماهیگیران موفقان روز آمده بودند و شکم نیز ماهیهاشان را دریده بودند و دراز به دراز روی دو الوار گذاشته بودند و در هر سر الوار دو مرد تلو تلو می‌خوردند و ماهی را به ماهی سرا می بردند تا از آنجا با کامیون‌های یخچالدار به بازار هاوانا ببرند. آنها که کوسه گرفته بودند کوسه ها را به کارخانه کوسه پاک آن سوی خلیج برده بودند تا آنجا نقششان را با قرقره و تناب بالا بکشند و جگرهاشون را درآورند و بالهاشون را ببرند و پوستشان را بکنند و گوشتشان را باریک ببرند و نمک سود کنند. باد که از شرق میوزید بوی کارخانه کوسه پاک را به بندر می‌آورد. اما امروز تنها قبار رقیقی از بو در هوا پراکنده بود. چون باد به شمال برگشته و بعد آرام گرفته و هوای کافه خوش و آفتابی بود. پسرک صدایش کرد سانتیاگو پیرمرد لیوانش را در دست گرفته بود و به سالها قبل میاندشید آ بله برم دریا برای فردا یه کمی ساردین گیر بیارم؟ نه برو به اییسبال بازی کن خدا هنوز میتونم پارو بزنم و رو خلیو هم تور میندازه و من دلم میخوااد برات ساردین بیارم حالا که نمیتونم برای ماهیگیری همراد باشم دوست دارم یک کاری برات بکنم خب تو برام آبجو خریدی دیگه مردی شدی اولین باری که منو سوار قایق کردی چند سال بود پنج سال یدت میاد وقتی اون ماهی کت و کلوفتو کشیدم تو قایق و ماهی انگار میخواست قایق و, و پار کنه تو داشتی از ترس ذره ترک میشدی آره آره اون شراب و شرق کوبیدن دوم شکستن لبه قایق صدای کوفتن و کوفتن یادم میاد بعد تو من انداختی روی سینه قایق روی گوله خیز تناب من که حس میکردم تمام قایق داره میلرزه و صدای کوبیدنت روی ماهی که مثل انداختن یه درخت بود و بوی شیرین خون که همه جاو گرفته بود اره اینا همه یادمه واقعا یادته یه همه از من شنیدی؟ از اولین روزی که با هم به دریا رفتیم تا به حال همه چیز یادمه پیرمرد با چشمان آفتاب سخته مطمئن پرمهرش به پسر نگاه کرد اگه پسر من بودی برد می‌داشتم و می تو با هم دل به دریا می زدیم. ولی حالا مال پدر و مادرتی و توی یه قایق خوششانسی برم ساردین بگیرم یه جایییم تا تومه سرخ دارم خودمم تا از امروز زیاد آوردم گذاشتم لای نمک سوی قوطی چهارتا تر و تازهشو برات میارم پیرمرد گفت فقط یکی امید و ایمان پیرمرد هرگز از کف نرفته بود اما اکنون داشت تر و تازه میشد مثل وقتی که نسیم میوزید پسر گفت دوتا پیرمرد پذیرفت باشه آه آه. نه نداز دیده باشیشون میشد به توستم ولی خریدم پیرمرد گفت متشکرم تر از آن بود که بداند از کی چون این تووااضوی به هم زده است اما میدانست که متوازه است و میدانست که این مایه خفتش نیست و از غرور راستینش نمیکهد با همچین جریانی؟ برده روز خوبی میشه. تا کجاها میخوایی بری؟ خیلی دور. اونقدر که وقتی برگشتم باد راهش رو عوض کرده باشه. میخوام سفیده نزده تو دریا باشم. پسرک گفت. منم یه طوری رازیش میکنم که خیلی دور بریم. تا اگه ماهی خیلی بزرگی به چنگ افتاد بیاییم به کمکت. ولی اون خوش نداره خیلی دور بره. پسرک گفت. آره؟ اما من بهش میگم که چیزایی میبینم که اون نمیتونه ببینه مثلا پرنده ای که دور سر یه شکار میچرخه وادارش میکنم رد دولفینا رو بگیره یعنی چشاش به این خرابیه؟ تقریبا کوره عجیبه تازه هیچ وقت به شکار لاک پشته آبی هم نرفته که واسه آدم چش باقی نمیزره ولی خودت چطور که سالای سال؟ توی سوال مسکیتو لاک پشت آبی شکار می و هنوزم چشات به این خوبی می خوب خب من پیر عجیبی هستم ولی انقدر زور داری که از پس یه ماهی گنده بر بیای؟ بگم اونم دارم بازه من خیلی کلک بلدم بیا اسبابا رو ببریم خونه تا منم دام بردارم و برم دنبال ساردین اسبابا رو از غایق برداشتند پیرمرد دکل را روی شاناش می برد و پسر جعبه چوبی، گلوله های تناب سفت، واف قهوه‌ای، چنگک و قلاب و دستش را حمل می‌کرد. جعبه تومه ها و چماقی که به کار رام و آرام کردن ماهی های بزرگی میآمد که کنار قایق می زیر دوم قایق بود. کسی چیزی از پیرمرد مرد نمی دزدید. اما بهتر بود، بادبان و گلوله های سنگین تناب را به خانه ببرند تا شبنم خرابشان نکند و اگرچه پیرمرد یقین داشت که هیچ کدام از محلی ها چیزی از او نمی اما رها کردن چنگک و قلاب را در قایق بیهوده مایه وسوسه مردم می پنداشت. با هم به سوی کلبه پیرمرد مرد راه افتادند و از در بازش تو رفتند پیرمرد بادبان را که دور دکل پیچیده بود به دیوار تکیه داد و پسرک جعبه و لوازم دیگر را کنار آن روی زمین گذاشت. بلندی دکل تا سقف تنها اتاق کلبه می رسید. کلبه از شاخ و برگ محکم نخل سلطانی ساخته شده بود که به آن گوانو می گویند و اساسیش یک تختخواب، یک میز و یک صندلی بود. و گوشه از کف کسیف اتاق کار اجاق زغالی را می کرد. روی دیوارهای قهوهی که از برگهای پهن و در هم بافته با علیاف ستبر گوانو درست شده بود، دو شمایل رنگی از قلب مقدس مسیح و باچره کوبر آویزان بود. اینها یادگار زنش بودند. زمانی تصویر رنگ رو رفته زنش هم روی دیوار بود، اما، پیرمرد مرد که با دیدنش تنهاییش را بیشتر حس میکرد، آن را برداشته بود و گوشه کشو زیر پیراهان تمیزش گذاشته بود. پسرک پرسید، شام چی داری؟ یه باش برنج زرد و مایی. میمونی؟ نه، من شام میرم خونه. میخوای اوجاقت روشن کنم؟ نه، خودم بعدم روشن میکنم. یا شایدم... برنج هم همونطور سرد خوردهام دام تو بردارم آره آره ورش دامی وجود نداشت و پسر به یادداشتان را فروخته بودند اما هر روز این افسانه را از نو می از بشخاب برنج زرد و ماهی هم خبری نبود و پسر این را هم میدانست پیرمرد گفت: عدد هشتاد و پنج شانس میاره. اگه ببینیم با یه ماهی 500 کیلوی برگشتم، چرات کیف میکنی؟ برم دامو بردارم و دنبال ساردی میگردم. تا برگردم تو درگاهی توی آفتاب بشین. باشه. منم یه نگاهی به اخبار بیسبال روزنامه دیروز میکنم. پسرک نمیدانست داستان روزنامه هم ساختگی است یا نه. اما پیرمرد آن را از زیر تخت بیرون آورد و گفت. اینو پریکو توی بار بنداد تا ساردینا رو گیراوردم بر میگردم مال هر رو با هم میذارم توی یخ تا صبح با هم قسمت کنیم وقتی برگشتم جریون بیسپار رو برم تعریف کن من میگم تیم یانکیا محاله به بازه من از دسته سرخ بوستای کلیولم میترسم به یانکیا ایمان داشته باش پسرم سرم دیماجی بزرگ و فراموش نکن من که هم از سرخپوستای می میترسم هم از ببرای دیترویت. پای خودتو داشته باش. مگرنه یه وقت میبینی داری از پیان قرمزای سینسیناتی و جوراب سفیدای شیکاگو هم میترسی. همشو بخونم که وقتی برگشتم برام تعریف کنی. فکر نمیکنی باید یه بلیت بخت آزمایی با رقم 85 بخریم؟ فردا 85مین روزه. فکر خوبیه. اما بالاترین رکوردت هشتاد و خب هیچ وقت دوباره اتفاق نمیافته. یعنی میتونی یه بلیت با رقم هشتاد و هفت گیر بیاری؟ میتونم سفارش بدم. دونه دو دلار و نیمه. از کی میشه قرض کرد؟ کاری نداره. من همیشه خدا میتونم دو دلار و نیم قرض کنم. گمونم. منم بتونم. اما سعی میکنم نکنم. اولش غرض میکنی بعد به گدایی مییفتی خودتو خوب بپوشون پیرمرد دیگه الان تو ماه سپتامبریم ماه اومدن ماهیای بزرگ تو ماهمهی هر بچهای میتونه ماهی بگیره من دیگه میرم دنبال ساردین پسرک که برگشت پیرمرد روی صندلیش خواب بود و خورشید پایین رفته بود پسرک پتوی سربازی کهنه را از روی تخت برداشت و پشت صندلی و روی شانه پیرمرد کشید چه شانه غریبی این همه پیر و این همه پرتوان و گردن که هنوز قوی بود و وقتی پیرمرد خواب بود و سرش پایین افتاده بود چینهایش آن قدرها به چشم نمی آمدند. پیروان پر از وصلش شکل بادبانش بود وصل ها از آفتاب رنگ باخته بودند و سیر و روشن شده بودند. با این همه سر پیرمرد پیر بود و با چشمان بستش هیچ نشانی از زندگی نداشت. روزنامه روی زانویش پهن بود و وزن بازویش آن را در نسیم غروب نگه داشته بود. پاهای پیرمرد بهرحنه بود. پسرک پیرمرد را به حال خود رها کرد و وقتی برگشت هنوز خواب بود پسرک دستش را روی زانوی پیرمرد گذاشت و صدا زد پاشو پیرمرد پیرمرد چشمانش را باز کرد و لحظی به نظر آمد که از راهی بس دور و دراز میآید بعد خندید پرسید چه آوردی پسر گفت شام دیگه وقتی شامه خیلی گرسنه نیستم یا بخور با شکم خالی که نمیشه مایی گرفت باشه و از جا برخواست و روزنامه را برداشت و تا کرد بعد به تا کردن پتو پرداخت پسرک گفت اون پتو رو بپیچ دورت تا وقتی زنده هم نباید با شکم خالی بری مایی گیری زنده باشی پسر خیلی ببینی الاشام چی داریم؟ روبی سیاهو سیاه و برنج و سرخ کرده و کمی هم پسرک اینها را در قابلمه دو طبقه فلزی از کافه تراس آورده بود دو دست کارد و قاشق و چنگال هم لای دستمال کاغذی توی جیبش بود کی اینها رو به مارتین، سابه کافه باید ازش تشکر کنم من کردم، تو دیگه لازم نیست بکنه تمام شکم یه ماهی بزرگ رو بشک میدم قبلنم واسمون از این کارا کرده گمون کنم پس باید بیشتر از گوشته شکم بهش بدم خیلی به فکر ما هست دو تا فرستاده من آبجوی رو از هر چیزی بیشتر دوست دارم <تصفيق> <تصفيق> میدونم ولی اینا آبجوی هاتوی با بطریه باتریاشو خودم برمیگردونم پیرمرد گفت دسته درد نکنه، خیلی خواب، ملازر ایشان بخوریم؟ پسرک به ملایمت گفت، اینه که من خودم ازت پرسیدم، دلم نیمت پیش از حاضر شدن تو در خابلم را باز کنم. پیرمرد گفت، خب من دیگه حاضرم، بعدی کمی واسه شستن دست رو محتل کردم. پسرک با خود گفت، تو کجا دست رو شستی؟ من به آب دهکده دو خیابان پایین تر بود و فکر کرد عجب آدم بی باد براش آب می آوردم و سابون و غلای تمیز باد براش پیرن و کت زمستونی و کفش و پتوی نوان بیارم پیرمرد گفت خورش عالیه <olho> پسرک گفت از بیسبال تعریف کن پیرمرد با خوشحالی گفت گفتم که <throat> <negotiations> توی لیگ آمریکایی تیم یانکی برنده میشه. اونا که امروز باختن؟ مهم نیست. دیماجی بزرگ که هنوز سر جاش هست. توی اون تیم بازکانه دیگه هم هستن. درسته. ولی برای خاطر اونه که این تیم چیز دیگه ایه. توی اون لیگ دیگه, دیگه تا میان بین تیم بروکلین و فیلادلفیا بروکلین رو انتخاب کنم یاد دیکسیسلر و پاسای آلیش تو پارک کونه میافتم. تاره هیچ کس مثل اونا بازی نکرده پاسهای دیکسیسلر کشیده ترین پاسایی هستن که من تا تاره دیدم اون وقتا که کافه کافتراس یادت هست همین آره؟ همیشه دلم میخواست ببرمش ماهی گیری. اما روم نمیشد بهش بگم بعدش به تو گفتم و تو هم رود نشد آره خیلی حیف شد شاید هم رومون میامده اون وقت خاطرش رو برای تمام عمرمون نگه میداشتیم درم میخواد یه بار دیماجیه بزرگ رو ببریم ماهیگیری میگم پدرش ماهیگیر بوده شایدم مثل ما فقیر بوده و وزه ما حالیش بشه پدر سیسلر بزرگ هیچ وقت فقیر نبوده وقتی پدرش به سن من بوده تو لیگای بزرگ بازی میکرده مم. وقتی من هم سن نتا بودم جلوی دکلی کشتی که بادبان چارگوش داشت ایستاده بودم و داشتم میرفتم آفریقا و قروبا شیره رو توی ساحل تماشا میکردم میتونم بهم گفته بودی دلت میخوات از آفریقا حرف بزنیم یا از بیسبال پسرک گفت بگم اونم از بیسبال راستی یه کمیم از جان خه تعریف کن پسرک جه را خ تلفظ میکرد اون وقتا اونم گاگوداری به کافتراس میمد اما وقتی مشروب میخورد خشن و بد دهن و بد میشد شد. حواظش به اصب بود و به ازبال. همیشه توی جیبش چند تو فهرست از اسم اصبا قطار بود و با تلفون که حرف میزد دائم اسم اصبا از دهنش در میآمد. اون یه سردستی عالیه. پدرم میگه از همه سردسته ها سره. چون که زیاد به اینجا میامد و میرفت. اگه... دروشرم هم هر سال سر کلش اینجا پیدا میشد، پدرت خیال میکرد از همه سر. حالا جدن تو میگی لوک بهترین سر هاست یا مایک گونسالس به نظر من مردم سامان. توی ماهیگیرا تو از همه سرتری. نه، بهتر از خودم هم سراغ دارم. پسرک گفت بی خود نگو. ماهیگیر خوب فرابونه و چند تا شنا اما تو یه چیز دیگه ای تو منو خوشحال میکنی خدا کنه هیچ وقت به ماهی بر نخورم که اونقدر بزرگ باشه که حرفمونو غلط از آب در بیاره اگه هنوزم همونقدر که میگی زور داشته باشی همچی ماهی پیدا نمیشه شاید اونقدر را که میگم زور نداشته باشم، ولی عوضش هزار جور حقه ولدم سوار کنم و اراده دارم. خیلی خب، حالا دیگه باید بگیری بخوابی تا صبح سرحال بلند شی من ظرفو میبرم کافه. از شبت به خیر، صبح بیدارت نکنم. پسرک گفت، تو ساعت زنگ داره منی. پیرمرد گفت، سن و سال، ساعت زنگ داره منه چرا پیرمردها انقدر زود از خواب بیدار میشن شاید میخوان روزشونو رو طولانی تر کنن پسر گفت نمیدونم فقط اینو میدونم که پسر ها خوابشون سنگین و زیاده آره خودمم یادم است سر موگه بیدارت میکنم اصلا دلم نمیخواد اون بیدارم کنه جلوش کوچیک میشم میدونم خوب به خوابی پسر بیرون رفت. در تاریکی شام خورده بودند. پیرمرد شلوارش را درآورد و در تاریکی به بستر رفت. شلوارش را مثل بالش لوله کرد و تویش روزنامه گذاشت. خودش را لای پتو پیچید و روی بقیه روزنامه های کهنه که فنرهای تخت را میپوشاند خوابید. خیلی زود به خواب رفت. و خواب آن وقتها را دید که پسر بچه کوچکی در آفریقا بود و خواب سواحل طلایی بیکران و سواحل سفید را دید که از سفیدی چشم را میزدند و خواب سخراهای بلند و کوههای قهله عظیم را دید مدتها بود که شبها در این سواحل زندگی میکرد و در خواب صدای قررش انواج را که به ساحل میخوردند میشنید و, می و خواهیخهای بومی را که با امواج می میدید بوی قیر و الیاف مانده شاهدانه را که از عرشه می آمد و بوی آفریقا را از نسیمی که صبح از خشکی میوزید میشنید همیشه با شنیدن بوی نسیمی که از خشکی میوزید بیدار میشد و لباس می‌پوشید و میرفت تا پسرک را بیدار کند اما امشب بوی نسیم زود به سراغش آمد و پیرمرد در خواب این را فهمید آنقدر خوابید تا قله های سفید جزایری را که از دریا سر به در کرده بودند و بنادر و لنگگاه جزایر قناری را دید. مدتها بود که دیگر خواب طوفان زنان ماجراجویی‌ها، ها، ماهی های بزرگ، جنگ و آزمایی ها و زنش را نمیدید. تنها خواب چند مکان و خواب شیرها را میدید که غروب در ساحل مثل بچه گربه بازی میکردند و پیرمرد به اندازه پسرک دوستشان داشت. اما هرگز خواب پسرک را نمیدید. فقط بیدار میشد از لای درک باز بود به ماه نگاه میکرد. شلوارش را از زیر سرش بر میداشت و میپوشید، بیرون کلبه می شاشید و سپس میرفت که پسرک را بیدار کند. سرمای صبحگاهی بدنش را می لرزاند. اما می که از این لرزش گرم خواهد شد و چیزی نمانده است که در قایق پارو بزند